عزیزم من کوک نیستم نویسنده و کارگردان محمد رزا هنرمند بازیگران. پرویز پراسی داقا خرپوللی باید پسرسید در چهارلساش تنها زندگی میکنه فاطمه معداریا ولی واسه اینکه دست و صورت تو بشوی اگه دات خاست میتون بالا محمد کاسبی به پلیس زهننگ کجا ما جایز فرها آیش ساعت ها جلوی یتین های مغازه وای میشه و تو شیژه م جا های ما رو میکن مهران جبی نظر خودتون رو در خصوص گزارش اییات کارشناسی دادگاه رو سرتم و زنده یاد. مهدی فتحی آخه شما چرا اجازه میدین در محضر محترم دادگاه اینجوری به من اهانت بشه موسیقی سعید انصاری تهیه کننده سید کمال طباطبایی ممور کلانتری مردی رو دستبند زده و به طرف دادگاه میبره کارمند دادگستری با سبیلی پهن و موهایی صاف و عینک مربعیش پشت سر اوناست پسرش هم کمی عقبتر داره راه میره پسرش رو به دنبال خودش وارد دادگستری میکنه نگهبان دمه در جلوی پای آقای افشاری پا میشه رامین به نگهبان رسیده دست به هم میکنه به رامین میخواهم چطوری؟ نمیدهی؟ این شین بانه چی؟ که تموم شد؟ آره دیگه نه؟ آره، باشه. کیف در دست توی راپله جلوی افشود رو میگیره. زرگردونه. بند... بنده یارد محترمه. کنارشه. بفرمایید. اگه بشه شما رو به تنهایی ملاقات کنم. یه دعوت کوچیک. من با هیچ کس قرار ملاقات خصوصی و تنهایی نمیذارم. این همه می دونن. اگه امری دارید تو اداره بتونم. یه موضعی بود که میخواستم با شما در میان بزنم البته انگوشتشو و علامت بود حرکت میده بگذاری خیلاتون راحت کنم من اهل خلاق نیستم افشاری دست رامین رو میگیره و از پلا بالا میره و پیرمرد عصبی به اون نگاه میکنه همکار افشاری پوشه رو به دست افشاری میده که تازه وارد اتاق شده میده و میره رامین هم میاد توی اتاق و کیفش گوشهی پرت میکنه رامین من دادگاه دارم رامینجا میشینی مصفیت نخوشی میکشی توان برگردم شیطانی نمیکنی به چیزی هم دست نمیزنی فقط هم پشتی میزنم من بیشنی رامین با تو هم دیگه رئیس دادگاه صحبت میکنه و افشاری تونتون می نمیزی نقطه نظر خودتون رو در خصوص گزارش شیعت کارشناسی دادگاه رو سرعتم تصویم این مردی از بین حاضرین بلند میشه آقای قاضی کلی برای سنگندازی شدن یه مدتی هم تمام کاسکوزار سر پیمونکار شکست پیمونکارم که حالا رفته خارج هم دست ما کودا و خرما بر نخیل بردرخت اوه بر بازرسی اداره کار قبول ندارد سه ماه تمام کارشناسای شما نظر خودشون دادن شما جانشین حضرت علی هستید خدا. افشاری خیلی تحت تاثیر قرار گرفته و به بچه که در بغل مادرش گریه میکنه نگاه از بس رفته از بس آمدیم و رفتیم زن و بچه و کوچ و کلفت اون اصلا از بین رفته بود ما رم کنید خدای هست تقاص ما رو می‌گیره آخرش آقای یزدی اتهام شما دایر بر تصویب در یک فقره قتل غیر کارگر ساختمانی براتری اولیایی به میزان 90 درصد مجدداً قضاوت دفن میشه. آخرین دفاتون چی وکیل آقای زاره میخواد بلند بشه که زاره که کُت و شلوار و داره مانعش میشه. شما چرا اجازه میدین در محضر محترم دادگاه اینجوری به من اهانت بشه؟ آخه چه قتل عزیزم؟ چه قتل؟ چه کشکی به حرفا کدومه اولا مغصر صد درصد اون حادثه خود اون کارگر بوده که بدون تجهیزات ایمنی بدون کلا و چیزای دیگه یهو تون گودا جناب غازی ثانیا من پول زور به کسی نمیدم من باج نمیدم بی خودم برای من سابقه درست نکنی وجدان نداریم چرا میگی باج خونون ساکت باش بردر من چه آخر آقا این باجه ما باج خوریم کوریم نبیدینی بچه یتیمه باقل مادرش باج کدامن نکم دادگاه به هم میرزه افشاری روی میز میکوبه که ساکت بشن اما همراه های زاره مقابل پیرمرد ایستادن و سراسده را اینداختن به دستور رئیس دادگاه افشاری برای ساکت کردن اونا بلند میشه. افشاری و وکیل زاره میان توی اتاق. افشاری میره پشت میزش. وکیل از پنجره بهش من خبر کنم. آره قسم من میگفتم آقا توسلی رو بگم من اگه جای ریس اداره بودم چشمو می‌بستم موکلتو با یه تیپ از دات کام می‌نداختمش بیرون تا بره قلق چمخات بکنه بکنه به جان تو اگه ساکت مونده بود حرف نمی زد تو همین دات من کارو فیصله میدادم بابا من کلی با فامیلای مقتول صحبت کرده بودم خودم یه پولی بهشون بدم رضایت بدم برام بیکارشو همین ریق بهم یکی نیست بهم میگه آخه مرد حسابی اگه ناصلامتی من وکیلتم خب بذار دو کلمه من به جای تو حرف بزنم همین چوارط و پولتی هم گیره انگار کارتش خیلی کلفته نیست؟ تا دلت بخواد پشتش حسابی قرص. تو رو خدا راضیش کن حق این بدبچارا رو بده. گناه دارن به خدا. حالیکه به قول معروف میگن یه ساختمون درست همون جایی که این بیچاره مقتول مرده، ساختمون قروخته که. یه برج 22 طبقه افشو، ساختمون چیه؟ 22 طبقه؟ ایبی. یا یم شنو غرم واقعا حال. افشاری هم پای پنجره. میده. عجب بنزی. بنزی دیگه. آره. اونم بنز آبیه متالیک. چه رنگی داره. بیف این ماشینی به این مامانی که مال اون گاریچیه بیف نو چیتونه میگه چشمامو بستم با یه تیپا از دادگاه گام کدوم سنش اینوری یا اونوری هر دو تا ملکیاشن یعنی زن نداره داره دو تا هم داره ولی بله خب ایرانی سن دو تا زنش با سه تا دخترش توی زندگی میکنه اینجا خودش با یه دونه پسرش تنها یه راست به چه بزرگی است. وکیل پاکتی جلوی افشاری میگه یا... نه تو داره این نامم که برای پاش. پسا چی بتاله یو یکی میام. افشاری جون، قربونت. یه وقت زود واسه دادگاه بعدی بده. پسا زود از شهرش خلاص شیم بریم. قربونت. باشه. حالا ما سعی خودمو میکنیم. وقت رو ببینم. بعد. پس بهم خبر بده. تلفن رو که داری. اون پاکت چقدر بود حالا. چون تاوانیه بره مرغ و برنج میدم بیشتر به خاطر این میگم. افساری یه چشمش دنبال پاکته. تا 5.5 هزار تومن بود باشه دستش داره مشکش برو پاسش بده بهش بگو پلانی گو من اهلش نیستم کور خوندین افشاری تلفن رو برمی‌داره و شماره می‌گیرم بذارمش شما تو چطور نه خیر بهش چیه شما یه وقت نزدیک برای دادگو بعدیتون می‌خوام برام بهتون میدم این کهش به یارو نیست خیلی خوه. هر چی تو بخواد پس بریم خبر بده باشه بابا هم سقف رامین اونجا است <تصفح> رامین توی اتاق همکارای پدرش پای کامپیوتر نشسته ببینیم. اینجوری خیلی بهتره. حالا این براماتون به صورت پشت سر هم افشاری وارد اتاق میشه. پس اینجوری جای کمتری از ورده سر اشغال میشه. پیرامون ببینم. چیکار دیدیم کلی باز دوباره مرگی گرفتیم. آقای افشاری من خودم بهش اجازه دادم. تو به ما چی یاد میده؟ بذارید همینجا بمونه. نه خانم ثقفی اون دفعه که دیدین آقای موشگری تذکر دادم. این درست نیست. برای من مسئولیت داره. ماشاءالله اطلاعاتش تو کامپیوتر فوق العاده. بله خیلی بااستعدادیه. خانم ثقفی هر بچهی به جای درس و مشق و مدرسش فقط به فقط کتاب کامپیوتر بخونه، همه بدبختی داره. نگین تو رو خدا، چرا براش کامپیوتر نمی‌خرین حالا که انقدر استعداد داره هیونی؟ حالا قول ساد در درصد می‌ده که براش یه پنتیوم بگیره. به به، مبارک. آره، قول دادم ولی شرطم گذاشتم. چرا شرطی می‌گی؟ باشه. بله قول دادم براش کامپیوتر بخرم به شرطی که معدلش 20 باشه. <تصفيق> است <تصفيق> نکم سخته خب دیگه کامپیوتر خوب نمره خوبم میخواد بیا بچه افشاری با ماشین در حرکته رامین بقل دستش و درس میخواه مردی با موهای فرفری و سیبیلی کلوفتم عقب نشسته افشاری مسافر کشی میکنه ما قبلن همدیگر یا جایی دیگه دیافت و عشنا. ولی هر چی فکر میکنم یادم نمیاد بله همینطوره کجا هم دیگه را دیدی تو دادگاه دادگاه کدوم دادگاه هر دو تاش هم بار اول که به جرم شرکت یه اخلاقی بانک ملی شعبه بازار محاکمه می‌شدی هم بار دوم یعنی چهار سال و دو ماه بعدش به جرم شرکت یه باند بزرگ سرقت مسلحانه محاکمه و محکوم شدیم. من مشید دادگاتون بودم حالا یادتون اومد بیا خدایا این چیه که افت اینقدر معذرت خودتون خواستید که یادتون بیارم کجا هم دیگه دیدیم؟ اگر من شخصا عادت ندارم مجله رو که تو خیابون این اونور می‌بینم به روشون میارم تو کتابت بخونم بچه نگنمی کردام دیگه کسی منو نشناسه اصلا انتظارشون رو نداشتم قیافه‌تون به کلی عوض شده ولی صداتون نه من از هم اول که گفتیم راهن صداتون شناختم ای والله ای والله به این هور شو زکاور این وای به سرت توره بله خیلی واس بخوام سوال میکنم شما الان باید تو زندان باشین تو دادگاه آخر 23 سال براتون حبس خونده بودیم چطوری بیرونیم از جا نیست شلوغه شروعه منم یه عادت بدی که دارم اینه که تو شلوقی نفس هم نمی‌گیره واسه همین مجبورم بزنم بیرون چاره‌ای نیست و یعنی خورقم تنگ شه ما رو بگو این همه رو پرونده شما کار می‌کنیم و زحمت می‌کشیم به خیال خودمون داریم ولی نسبت شما ماجما رو تو شهرات جمع می‌کنیم واقعاً که مسخره است بهتون بر نخوره ها منظورم به شما نیست همه رو دوباره سوال میکنم هنوزم تو کار خلافی انگار گیر دادی یا گفتم بیخیال دیگه من همینجا پیاده میشم افشاری که ماشین کهنه و قدیمی نداره نگه می داره مر پیاده میشه و میخواد کرایه بده مهمون باش قابل نداره راستین راست راست چی بود افشاری حمید افشاری آره افشاری جون بیخیال ماشین انگار نه انگار ما رو دید ها به زو برسم بهسا بردم کی از من که کاری ساختم. آره میدونم. یه وقتی ندی یا دیدی ندیدی. یا هم مرد میره و عف شریم هرکتاب می‌کند. آه مسلم نیست. فقط می‌شناست. مادری اسمش چیه؟ اسمش اسکار ساره یعنی معروف و اسکار ساره یه خلافکار هرفايیه بابا. اسکار دستمیش گریه چرا؟ چندین بار دستگیرش کردیم ولی باز هی دستگیرش کردیم فایده ای نداره. آلا، بچه من چه می‌دونم؟ و اما لا گیل به من به واسه مسافره باشه. 300 تا رسنوا. افشاری و بعد رامین وارد مدرسه قدیمی و کهنه این می میشه. رامین، همین چه بوختم من بعد جای جایی رامین، دم در میسه و پدرش از سرایدار سر. مرد دفتر مدرسه رو نشون مادری از دفتر بیرون میاد و عوش پسر رو که بیرون ایستاده بود میگیره و میره. آقا از افشاری شما. توی دفتر. باعث افتخار این مدرسه. اینو جدی میگم ما مدیر مدرسه دنبال کارنامه رامین میگرده. ملاحظه کارنامه پیدا شده. به به. اختلاف سورس دوم و سوم حیرت آوره. ما حتی فکر کردیم گفتیم شاید اشتباهی پیش اومده. مجددن همه چیزو با دقت کنترل کردیم. دیدیم نه. هیچه اشتباهی در کار نبوده بلکه این فرزند خود شما بوده که تونسته به این روت ببرسه مگه چند شده؟ معدلش منظورمم بیست, بیست. افشاری از تعجب داره شاخ در میاره و ناراحت میشه افشاری کارنامه به دست و مغموم از دفتر بیرون میاد سری میاد و کارنامه رو از پدر میبنه افشاری و رامین سوار ماشین میشه. افشاری ماشین رو روشن میکنه اگه نظر بعد... من میخوام من میگم از جای پنجم چی که داره قدیمی میشه پنتی فور ببینم. اون دیگه چیه؟ از اون تره؟ نه من میگم پنجم فور تو میگه از اون تره؟ جدیده بابا. چی یعنی سه؟ فور یعنی چهار؟ من که میدونم. خب پس چی؟ سرعتش هم خیلی بالاتر از پنجم چیه. بیشتر از 30 گیگابایت. درست کن. ادلاش قبول می‌کنم افشاری و رامین توی فروشگاه بزرگی هستن و با پله برقی بالا میرن. اونا حالا توی فروشگاه کامپیوتر باشا باشا. هستن. فروشنده سیگار به دست فاکتور می نویسه. بوزن باشه بیاید. هر شب حضورتون میشه 710000 تومان. البته اگه تفریج جزئیام وجودتون تایید میکنه. قربان. جنا. قربون بشما استاد. افشاری حواسش نیست. رامین فاکتور ببینم بده. اومد فاکتور. شاچو صد ده هزار تو چقدر گرون بابا؟ رامین فاکتور از پدرش میگیره گیره نقلونی پذ یا چک پول بنوودکن. اینا ارزون ترش نیست منظور منظورم اینه که ارزون تر از این نمیشه پنتیوم تیری نه ولی اگه توی یا پایینتر مثلا چه۶ بخوادیه کم چرا ولی من توصیه نمیکنم چون قابلیتش کمتره دیگه کسی این کارو نمیکنه یعنی که کارتون کریتون به افشاری میخو. شما یکم اینقدر ضایع واسه کنار. خیلی معذرت میخوام حق با شماست. فکر, فکر افشاری نگاهی پرزشگرانه به پسرمون. ما میگیم نخری. ببینم بابا چیکار باید بکنم. بگم براتون وادیت کنم. بالاخره شما تصمیمتون میتونه گرفتیم نه افشاری آروم به فروشنده نزدیک میشه. کوچیک داشتم خدمتتون. بفرمایید. اینا که نمیشه یکم مختصرتر بشه اینا همه به هم مربوطه عزیز دل من این چیزی که تر بشه این یعنی مثلا مانیتورشو نمیخوان که نمیشه مادربردش رو نمیخوان که نمیشه موسش رو نمیخوان که نمیشه بس چیش مختصر بشه نمیفهمم خیلی معذرت میخوام واقعیتیشی اینه که من یه خریغتی کردم به این بچه قول دادم که کامپیوتر روش بخرم ولی حواسم به سلامتیه اول دیگه خیلی واسه معذرت میتونم فروشنده سراغ مشتری دیگه ای میره این قیمت برای من سنگینه. من نمیتونم. آقای محترم، اینجاست که میوه فروشی نیست، دارید چونه می‌زنید. من که نمیگم اینجا میوه فروشه. شما اجازه بدید من عرضم تموم بشه. من گفتم عزیز من. شما میتونید یه دسته دوم، من چه جوری دیگه بخرم؟ من مصممم دست دومه. که نگفتم دست دوم. شما چرا نمیذرین آدم حرفش رو بزنه؟ چیزی که به درد شما بخوره نداری اصلا هیچ کدوم از اینا فروشی نیست. اینا به درد شما نمیخوره. بفهمید کاش می‌کنه. بس من... چی من... افشاری ناامید به طرف رامین برمیگرده. رامین سرش رو پایین میندازه. و افشاری چیزی نمیگه. ولی بعد نزدیک رامین میشه و میگهشی تو میگه چشم او به بنده و بزنم همه چیز در بداغ می کنم. چی گفتی؟ با شما نبودم. او فروشنده شنیده. شما که هی دعوا داری؟ فروشنده و همکارش زیر بغل افشاری رو گرفتن افشاری توی هوا پاهاشو جمع کرده و دوتا مرد اونو از پاساش خارج میکنن رامینم دنبالشونه بیرون توی پیاده رو اونو زمین میذارن نگاهی بهش میکنن و به طرف مغازشون برمیگردن افشاری در سکوت و پشت سرشون براشون خط نشون میکشه و بعد سر رامینو در بغل. میکنن. رامین پشت میز نشسته و انگار داره با کامپیوتر کار میکنه اما موس و کیبورد و مانیتور همه ساختگیه نقاشیه، دکوریه گاهی <تصفيق> نگاهی به کتابش می‌ندازه. فکر میکنه او کار میکنه و دلشو به این کامپیوتر دکوری خوش کرده پرده اتاق بازه باد میاد و پرده رو تکون میده رامین موس و تکون میده و صفحه این نگه دارنده ای کاغذ میافته سیم موس ساخته که به اون وصل بود و افشاری که لایدر رو باز میکنه و از دیدن این صحنه دل شکسته شده و من خودم برات بهترانی گرمترین کامپیوتر دنیا رو میخورم فقط یکم همه مولد بده فقط کم افشاری پوشه به دست از اتاق بایگانی بیرون چشمش به همون پیرمرد سرگردون میفته که میخواست توی پله ها بهش رشوه بده پیرمرد چشمش به افشاری میافته افشاری با سر اشاره میکنه که بیه دنبالم بیام خودش میره و پیرمرد به دنبالش از پله ها بالا میام افشاری آروم از کنار پیرمرد رد میشه توالت زیر بله اون باییم شما چی گفتی؟ من منتوجه نشدم توالت زیر بله اون باییم کوالت؟ این قطعه من نگاه دونم باشه باشه من خود رو بزنم در بزنی که بدونم در شما شمایی چرا سیدا؟ توی اتاق پدرش نشسته درس میخونه و بسکریت میخونه افشه در رو باز میکنه و سراسیمه وارد میشه و در میبنده آقای سیف که نیومد؟ نه سیفی بابا؟ هیچی هیچیه اگه آقای سیف مومد نگو من بگو بابا با با با با رفته چیزی بگو رفته دبیر خونه نه نه نه بگو بگو رفته بایین یک کاری که توی بر میگرده تو همینجا بیشین از جا تکون نخون باشه منم چیز میکرم میری الان میرم بر می گردم. باشه الهی با میده تو افشاری با رفته... سر میره تو در نمیدونه چی کار کنه و چی بگه در رو باز میکنه و میره آروم آروم از پله ها کدش رو به د کسی نیست، وارد میشه. پیر مرد کوتوشروار آبی اش رو بر روی دوخت و روبروی عفشاری است. نه دارایج من خیلی مفصلم، امشامم کی دست بزنی؟ از کیفات معلومه. نه یه زحمتی برای فندق. شما سیگار می‌خوریم. نه مسالمه نیست، من جلویش. سیدای چک چک که آبی سیفانی دستشون هم شنیده میشه. پیرمردی مردی شیک پوش پاکت سیگارش رو بیرون میاره. یه نخو بیرون میذاره. افشاری ناشیانه سیگارو بر می‌داره. سیگار به لب میذاره و پیرمرد براش فندک میذاره چه فندرگی خسنگی قابلی نداره مالی نه نه نه جوری گفتم امکان نداره من فندرگ زیاد دارم مالی شما خیلی بمنون چون استهان میکنم شما حالا از این کار رو نکردید چرا؟ تالا برام خیلی بیش آمده من سابقه هم زیاده نگفتی کار چیه میخوام یه نوبت دادگاه برام گاه جا میتونم. درسته؟ باید میتونم سفر میخوام تکلیفم تو سر افشاری پک میزنه و فوت میکنه تو صورت پیر چن؟ چند؟ چی چند؟ چقدر میدی؟ پول منظورمه کار مهمی که نیست فقط میخوام به جای ماه آینده همین ماه باشه همین اتباقا خیلی هم مهمه. اگه بفن من برام کلی درد سر داره یه سوی برات خرج برمیداره پس اول شما نظرتونو بگید ببینم اصلا صرف میکنه یا نه؟ کاری چیه؟ فکر نکنم شما این کاره باشی گلش از خیلیش گذاشت ببینیم خب باید بریم دیگه ممکنه یکی بخواد بیاد این تو اگه ما دوتاره با هم دیگه اینجا ببینن که درست نیست. من خودم درستش بکنم نگران نباش چه میخوایید میخوا بخیران من که گفتم من سرش شدم مسترد. اگه از کی میخوایید این مرد عصبی از دستشوی بیرون یاد از پله ها بالا میره افشاری مونده مستحصر افشاری به اتاق خودش برمیگرده پوشه قرمز دستشه و با فندک توی دستش بازی میکنه رامین سرشو گذاشته روی کتاب آموزش ویندوز 2000. افشاری ناراحت و در خود از پشت سر رامین میره طرف پنجره اتاق بابا من یه کامپیوتر نخوام تو حالت خوب میشه نه چون حالا من کامپیوتر میخوام دیگه هم هیچ وقتی نارفی نزن افشاری چهره مصممی پیدا کرده مردی با ماشین مدل بالاش میپیچه توی کوچه و جلوی در خونه توقف میکنه افشاری به ناگاه هست توی ماشین خودش بلند میشه و نگاه میکنه راننده پیاده میشه و در بزرگ خونه گرون قیمت رو باز میکنه ماشین همون زاره است. افشاری نگاهی به ساعتش میکنه و نگران منتظره نقشه بیرون و داخل خونه رو توی دفترچه میکشه قهوه خونه سنتی ادهی پیر و جوون نشستن قلیون می و صحبت میکنند. سر میز چهار نفری از غر هم نشسته پیرمرد قهوه چی میاد و زیر گوش از غر یه چیزی میگه و میره از غر برمیگرده و پشت سر خودش افشاری و میبینه که تسبیح به دست ایستاده کتش رو دستشه میخوام با حرف بزنم ولی تنهایی چه حرفی؟ گفتم که تنهایی سه نفر دیگه از سرمیز میشن و میرن خوب فرمایش خیلی دوم مالت گشتم پیدا بی خود گشتی ماله حق تو که توی اینجور حرفا نیستم اون تلفن. یه پولیزه هنگه زمانه بگو من کجا ما جایزتو بگی میدونم فایده نداره سابقه دارم خب پس چی؟ من کلی مجدم میشنسم ولی به نظر من تو به همه اینا فرق داری درسته بسش کمتر مجدم میره میشنسم که به انوزی تو تو کار شرفهی باشه فقط به نظر من تو یه مشکل داری بقیده ای من مشکل تو اینه که تنهای واقعا تنها روشانتر حرف بزن تا ببینم چی میخوای بدی تنهایی خلاف کردن چیزی توش نیست همیشه برد با اونایی که یه باند درست سابی هرفه ای دارن یه باند از آدم هایه باندایی که کارایی درست حسابی میکنن نه آفتا می توسی تالا مافیایی به گوشت خورده اونا هیچ با خطر نمیشن. چون تو همه مراکز مهم محساس مثل داد و گستری آدم دارن آدم که هوای از های بانداخدش رو دارن ولی نه علنی برو سر اصل ما طلا چایی که میخوری؟ آره بدم نمید آفرم چایی بده من و مادم اینجا تو باید پیشنهاد یه همکاری بدم اگه بخوای تو چی باشه یه آقای خرپولی وای پسر سیزده چارده سالاش تنهایین زندگی میکنه من اونو میشنسمش اون حاضره برای سلامتی و دیدن دوباره پسرش همه ای زندگیش یه جا بده چطوره؟ شوخی که نمی کنی؟ نه اصلا شوخی در کار نیست طرف هست؟ اطلاعات طبقه بندی شده طالبه کشت خورده اه یه چیزایی هزگیش وقت نبرز همینقدر بگم که روش کار و فکر حسابی شده تقدیخ شده بسه جور جورمه سنگینیه خیلی خطریه تو که خودو بهتر میدونیم طرف تو دادگستری پرپنده داره اون با من ما میتونیم از نزدیک مراقب رفتار و اکس و باشیم اگه به خواد اختام بکنه ما بلا فاصله میفمیم ببینم میشه بگه چند نفرین که روی نقشه کار میکنه نه اطلاعات طبقه بندی شده نهی زودیگاه درند خب چی میگه؟ راستش سوی قاطی کردم من به طرف چون تو یه آدم سنتی و محافظ کار و واپس گراه هستی به بر نخوره شیبای کارتم قدیمی و به درد نخوره خب برای همینم عقب مونی و خودت از این وضعیتی که داری نشات بدی یادم میگفتی عطایالم داری خوب. چرا نباید بچه های من و تو بیتونن مثلا یه کامپیتر دورست ساگی داشته باشن پیرکیو چقدر قراری آرورو تیق بزنی؟ اونقدر که عرضش این ریسکو داشته باشه هرچی تیقی دیم پنجا پنجا نه امکان نداره سی هفتاد یک کلام بدونشونه واسه بس چیه؟ بسیم که تو که یه نفریه ولی ما یه نفر نیستیم دیگه قبول نکنیم ناشرام برم سراغ یکی دیگه چیزی که خلاف خلافکار بفرم نوبرش که نیم بردیم کشتر رو مجتمع قضایی افشاری از مجتمع بیرون میاد. به ساعتش نگاه میکنه. یه مأمور متهمی رو به سرعت بیرون میاره که افشاری میترسه و به سرعت دور میشه. بشه. اصغر سارق با دوستی مشغول خوردن دیزیه. عجی تلفن. اصغر گوشی رو از ساب مغازه که قلیون نکشیم میگیره. بله افشاری از تلفن عمر بله باش صحبت میکنه. تو، امروز دهمی زودی چیه نکنه جازدی خب اگه پشینون شدی مسئله نیست ما،, ما خودمون این کار انجام میدیم حتی بگونتون نه شی ما وقتی که دست دادیم یعنی دست دادیم کجا باید بینمه فهمیدم امایت برم خودش چه زود آره ما کردیم منشکل نکردی؟ نیست اینا یا خیلی هرته‌یان یا خیلی احمق، باید رفتو دید. تو برو بهتر توی کارونه میینه. اصلا رفتم، رفتم. بچه‌ها افشاری و اسخرساریق در فضای باز روی صندلی نشستن با هم آپورتقال می‌خورن. امروز سفر با نشو. 8 تا دیوان خالی هم من همین 900 تا دیگه. آس. آره. وظیفه تو اینه که پسر رجلی خونه‌شو می‌دوزی و به من ملحق می‌شی. من دو, دو تا تو ماشین منتظرش نشستم. سو کارت بی‌نقص انجام می‌دی. باشه، اینجا ببینم. دارم به مون میشه افشاری نقاشی کودکانی از خونه زاره روی چمن رو پهن میکنه ساعت سر راننده پسر رو از باشگاه تنیس میاره خونه اینجا ماشین جلوی در نگر میداره خودش پیاده میشه تا درار رو برای خودش باز کنه حالا پسر کجاست؟ تو ماشین آفری چون تو ماشینه تو نقشه معلوم نیست یعنی ما نمیبینیمش اینم هم تویی که داری میدویی اینجا ببینیم. آره؟ خب بعدش خب بعدش معلومی دیگه یه ماشین بیراننده که روشنه و یه پسر تیدش مامانی که کلی برامون میارزه توش نشسته همه چیز آماده است برای اینکه مثل برق بر پری پشت ماشین رو بگازی من تو این خیابون تو ماشین منتظرت هستم اینجا چه؟ مثل که سوال دیگه یه آخه همین؟ به همین سادگی؟ نه این شروع کار ماست بعدش وارد مرحله دوم میشین که اصل ماجراز خب مرحله دومتون چیه؟ چیه؟ از خصاره, از خصاره بلند میشه یقیه افشاری رو میگیر و میچسبونه به درخت خون باش نتار. نه ترسیدم بعدش قرارش قلطی رو کنیم همه چیز دستگی محبقیت تو داره اگه تو بتونی کارتو خوب انجام بده که من مطمئنم میتونی بعدش وارد مرحله دوم میشی وگر نه وای به حالت اگر من محشل خودت کرد بودا کنه منو برای یه کار احمقانه استاد گیر نندخته باشی چون و کارت داره می‌تونی همین الان قبول نکنی خداحافظ من اسرایی ندارم وقت وقت بازم کار انجام میشه خب معلومه که انجام میشه رایدگی نمی‌کنه ذل میکنه یعقوب خیلی دارم میخواد بدونم با کیو طرفم بریم کجا لا ما سر بگه نمیخوام با سر بده چرا چیرا خب یه میره و افشاری هم پشت سرش کمره افشاری درد گرفته دم در خونه مورد نظر بنز آبی از راه میرسه دم در خونه توقف میکنه اسخر سارق برگای درخت رو که پشتش قایم شده کنار میزنه و نگاه میکنه راننده پیاده میشه تا درو رو باز میکنه اسخر سارق منتظره یه فرصته حالا. از مخفیگاه بیرون میاد و به طرف ماشین میره افشاری پشت بوتهای برگ نو داره دید میزنه از دوان دوان توی ماشین میره از در عقب سوار میشه از پشت با چشم بند چشم پسر رو میبنده پسر ترسیده چی نمیگه؟ راننده در ماشین رو رو باز میکنه که یه دفعه میبینه ماشینش داره حرکت میکنه بله آدم رو این صورت گرفته راننده تو سرزنان فریاد میکنه دوست. دوست. اصغر سارق با ماشین مدل بالا میاد و کنار ماشین افشاری که خودش هم توش نشسته توقف میکنه افشاری با استرس نگاهی به اون میکنه اصغر پیاده میشه افشاری هم پیاده میشه اصغر هم پسر رو چشم و دست بسته پیاده میکنه به طرف ماشین افشاری میبره افشاری در صندوق عقب رو باز میکنه بارو بالا نمو کنی نمیخواه بچه عج سارق باشی حرف نزنی کارو باد نره. به سر و بغل میکنه و توی صندوق عقب ماشین میذاره و در صندوقو میبنده. عقب یاد صد بگی بخواب نترس. آره نترس. خب بریم. ب، بریم دیگه. بری افشاری هول شده. نمیدونه چی کار کنه. افشاری پشت فرمون میشینه و اسقر سارق بغل دستش. راه میافتند. و ماشین زاره همونجا میمونه با در باز. افشاری از شهر خارج شده و در جاده حرکت میکنه. به جای پردار و درختی میرسن در گوشی توقف میکنه هر دو از ماشین پیاده میشن افشاری در صندوق اقب خب رو باز میکنه اصغر سارق پسر رو بغل میکنه و پایین میاره افشاری در صندوق خب میبنده و دوان دوان به طرف ساختمان باغ میره اصغر و پسر هم پشت سرش افشاری در ساختمان رو باز میکنه و هر سه وارد میشن باق بزرگ و باستفاییه مارو کیه این با؟ مالی آدم خیلی پونداره که او براب زندگی میکنه ایران نیست بیا باشیم پسر و پای پلی نگه میداره و خودشون وارد حال میشن سر میشه. حالا اسغر سالق دست به دیوار میزنه خوب حالا شما همینجا بمونید تو هم برم یکیم خروحی براتون خرم خب بعدش زود برمیگردم مواظب باش اینم کلید در و گفلش بازش و وازش نکن من دو تا سه تایی براتون میزنم باش یه کسی به من میگه من کجا شما کی هستین چی میخوای افشاری کد در دست و کاغذ به دست توی کیوسک که تلفون ترسیده دستاش می نرزه. سلام خانم من من میخواستم باقای زاره صحبت کنم دائم این ورانور رو نگاه میکنه من یکی از دوستانشون هستم لازم نیست منو بدونیم من به خانم قبلی هم گفتم من باید با خودش صحبت کنم ی... یک کار مهمیه باشه. باشه باشه دست. رو. پدر پسر توی دفتر کارشی که منتظر تلفنش بدیم پشت خطه. جواب بده. مردی با موهای صاف و سبیل همونجاست. الو الو. سلام جناب آقای موسی نزار. خوب گوش کنیم چون هیچ چیز دوبار گفته نمیشه. فرزان پسر شما گرفتار ماست. ما اونو در مقابل پرداخت یک میلیون پول نقد صحیح و سالم به شما تحویل می‌دیم. چی؟ یه میلیون چی؟ آقا با هیچ کس دیگه هم در این مورد صحبت نکنید. تحکید میکنم هیچ کس منتظره تماسو بعدی ما باشید قد که یعنی اونا یه میلیون دلار از من میخوان یه میلیون افشاری از جیوس بیرون میاد کاغذ شماره رو پاره میکنه روی زمین و به دو میره بقالی کوچیک مهم سلامانکم خوش تشیف هم بردین سوپر متعلق به خودتونه افشاری برمیداره پنج تا کنسرو ماهی دو جبه دستمال زن چورتکهی برمیداره نون چی؟ نونم, داری؟ نونم داریم نونم داریم پنیر تازه محلیم داریم همین امروز ادهان تا اطراف برامون اومده اه. بدین از اونام بدین زغال خوبم داریم نه،, نه نه زغال نه زغال. به سلامت این با خرید. نخیب باقی یکی از دوستان اون هست. کل به خدا یه باغ باصفا افشاری با یکیسه کیسه پر و یه شونه تخم مرغ در دست وارد باغ میشه. از کنار ماشینش ترسان و لرزان میگذره و به ساختمان میرسه. کنار پنجره از اصغر سارق درو براش باز کرده افشاری وارد میشه. خریدار رو زمین میزره. از لای در نگاهی به سر میندازه. چشمش مسته است دستشم مسته است پسر کجاست؟ از ماهی رو باز کرد و با دست میخوره ما تا که قراره اینجا بمونیم تا وقتی که من خبر بدم من میرم تو به کارهای دیگه همون برسم تو باید حسابی مواظب باشی ممکنه سرکلهی روستایی ها که خیلی هم پسران این طرف پیدا بشه ما با هیچ کس قراری نداریم در برای هیچ کس قراری از من واضح میکنیم یکم هم به اون پسره بریز نظر بهش سخت بگذره. جون تو جون اون دست تو سپردم ایش سرکون بایش بدرفتاری نکنیم اون تبرک تخصیر نداریم افشاری میره و از غربهش نگاه میگنه شب شده افشاری با ماشین میرسه جلوی در خونه و توقف میکنه رامینو از دریچه خونه میبینه که چشم انتظار پدر نشسته لحظه به فکر فرو میره روز بعد افشاری با عجله و آشفته وارد محل کار میشه آخ نزدیک بود با یه زن برخورد بکنه زن میگه حواست کجاست؟ در دفتر دادگاه رو باز میکنه همکاری در حال شمردن پول بیرون می سلام. میگه سلام کجا داری میگن؟ سلام یه سر میرم تا داره شکر میگن تو چه تجاره دارم رکته ایم؟ ایچی من خوبم کی گفته؟ چه همه هم فکر کنم من اینوز یه طوریم اگه همه فکر میکنند اتمن یه طورت هست دیگه ها برمیگردم افشاده وارد دفتر میشه کیفشو طبق معمول روی میز می نزه. بوشه ای بزر رو بخشم میمهرمان رم کن کن کن کن فقط یه بار فقط همین یه بار به جون را میخصم میخورم فقط همین یه بار شماره رو برمیداریم تلفن رو پرداشته شماره میگیریم سلام به توسولی. افشاری هستم از دادگستری حالتون چطوره؟ آره میخواستم بگم من بررسی کردم کلی وقت دادگاری این برون بر کردم باتون هستم یه وقت برای چند روز آینده براتون می‌ذارم چرا چی چی میشه؟ کم توی سر خودش می‌کوبه و نگران پشت میز روی صندلی می‌شینه. بیمارسا. و چیزی افشاری از پلای حیات بیمارستان بالا میره و وارد ساختمون میشه. به راهنمای روی دیوار نگاه میکنه. به جهت فلش توجه میکنه. به همون طرف میره. میخواد وارد آسانسور بشه که معمور جلوشو میگیره. بخش زاییمون. خانمان داره فارق میشه. گفتم و اصرار کردن که باید حتما پیشش بشن. روپیه میخواد بندنی خدا بخشتای ما کجاست؟ طبقه دوباره تکریم میداریم ممارک مبارک باشه به سلامتی من آمون یاد دونر بله بله, بله، وارد آسانسور میشه به طبقه دو رسیده دورو برشون برش رو نگاه میکنه که کسی نباشه از آسانسور آروم بیرون میاد پرستاری رو میبینه روبر میگردونه که نبیندش افشاری دوزدانه وارد بخش سیزیون میشه که شما چیکار داری؟ ببخشیم اینجا بخش مراقبت های ویژه می به که بله دستش من یک از بستگانمون گفتن اینجا بستری خب همین دیگه م... میخوام ببینمش این فامیلش شما بنده خدا اسم نداره چرا چرا اسم که داره اسمش اه... آجاهات زاره است آقای محسن زاره ایشون با شما چه نسبتی داره؟ ده... ولاد یعنی خیلی نزدیک نیست خیلی هم دور نیست پس در همین حوالی است بله ایشون تو حالت کمهاستن و مملو ملاقاتن فامیل تو رو میگم پس اینه مجوز شما مطمئن دیگه با انگشت روی میز عصبی ضرب میزنه پرسال نگاهش می‌کنه به خداش می‌کنم خواهش می‌کنم میدونم. خب دیگه خیلی ممنون لط کرد. خواهش می‌کنم بله منم خواهش می‌کنم درست پرسال نگاهی بهش می‌کنه و افساری میره و از در خارج میشه راستورم به کارش می‌رسید. عفشودی که متوجه شده اون سراغ کار رفته، باز دزدانه وارد سیسیوم میشه و آروم میره که یهو پرستار جلو سبز میشه. حسابی ترسیده. پرستار نگاهی به ساعتش میکنه و مثلا که سال دیگه داشتم. بله بله. آره بله بله همینه چه. برگشتن اینجوری. بفهمی. میخواستم ببینم یعنی واقعا نمیشه دیدش از دور. فقط برای اینکه قلبم مطمئن بشه. پر از از توی گلدون گلی یه شاخ گل بر میداره و به افشاری میداره این را بگیر دست دست خالی نباشی خیلی ممنون شما خیلی خیلی چی؟ چیزی پس مرابب باش ب... بله بله بفرمایی اینا کامیده زیر دستگاه اکسیژنه و دکتر به اون رسیدیگی حالا قلبم قانه شدی؟ اگه فکر میکنی سوال دیگه ای نداری بهتره بری چون من دارم خلاف مقررات عمل میکنم. فقط یه سوالی دیگه چی؟ حالش خوب میشه؟ خطر رفت شده به موقع اووردنش میشه این گل از ما مثل تو اتاقش حتما وای چه گل قشنگی افشاری چپ چپ به پرستار نگاه میکنه آب دهنشو خورد میده و به طرف اتاق زاره میره و بعد با عجله از اونجا دور میشه رامین در تنهایی طفل مرگ نیشگنه و توی مایتا به نیزه. به طرف تلفن. میده افشاری از باجه تلفن جلوی بیمارستان با پسرش صحبت کردیم شب شده به دراتونم تلفن زدم. گفتن از صبح رفتیم بیرون چرا این کار کردیم؟ چی گفت بدون ارزهی من به درات تلفون با کی صحبت کردی؟ دیگه هیچ فقط این کار رو نمی کنی. الان داری چیکار کار رامی گوش کن من دیگه نمیتونم حرف بزنم خدافز افشاری یهو پرستار رو میبینه که بیرون اومده گوش رو ول میکنه و با عجله سوار ماشینش میشه راه میافته دور میزنه و جلوی پای پرستار میایسته. پرستار تعجب کرده سلام منو که یادتون هست اونجا تو سی سیو بله خوبم یادم هست یعنی انقدر بیکاری که از ظهر تالا این دارو برای پلاسی؟ نه نه برعکس خیلی گرفتارم شما به من خیلی لطف کردین منم خواستم تلافی کنم مثلا چه جوری؟ حداقل داره خونه نگران نباشین من مصافرکشی هم میکنم فقط از شما کرایه نمیگیرم خوبه؟ فرستار سوار میشه ماشین راه میانده چیه؟ هل شدی؟ نه چه هلی؟ مسیرتون کجاست؟ فکر کنم بیشتر کنیت بخواد بدونی حال فامیلتون چطوره درسته؟ فکر بدی نیست اونم فقط واسه اینکه سر صحبت رو باز کنیم وگرنه من هیچ اسرای ندارم نیم ساعت پیش از کما بیرون اومده و واکنشاش طبیعیه خبر خیلی خوبیه خدا رو شک هر حرف چی؟ حرفم زد؟ نه چیز به خصوصی بعد می گفت؟ یعنی یعنی چی نگفت؟ ام... چرا چرا؟ یه چیزایی میخواست بگه چی؟ چی گفت؟ فکر کنم بیشتر میخواست یه اسمی رو بگه مثل فرهاد فروزان یا فر. فرزان آها فرزان فرزان کیشه پسرشه پس چرا این پسر نیومد ملاقات پدر ها؟ چرا؟ لبود خبر نداری تفلاچ خیلی عجیبه تو خبر داری و پسرش بیخبره به نظر تو عجیب نیست؟ میشه کسا راجب اون حرفی نزنیم چرا؟ نمیدونم چون هی احساساتی میشم فکر کردم برای مهم مهمه بدونی. نه دیگه اصلا برای مهم نیست گوش گردن به مشکلات مردم ساده ترین کاریه که ما پرست انجام میدیم حالا به خاطر حرفم اگه بخوای حاضرم به حرفات گوش بدم بدونه هیچ مننتی. من, من فقط میخوام بدونم که حالش واقعا خوب خوب میشه همین احتمالا چند روزه دیگه خب دیگه تموم شد اگه ممکنه دیگه اصلا راجعه اون حرفی نزنیم <تصفيق> بیشتی دیگه بگیم ظاهرن این بابایی که توی بیمارستانه باید برات خیلی عزیز باشه. که اینقدر احساسات به خرج میدین نه خانم محترم گفتم که اصلا گروه بابای اون اون نه برایم عزیزه نه مهمه اصلا میخوام سر به تنش نباشه پس چرا اینقدر وقت سرفش میکنی؟ من من برای اون وقت صرف میکردم من فقط میخواستم خودی رو ببینم برای همینه که این همه وقت بخ... فقط منتظر تو شدم نه اون جده؟ لابود الانم یه دل نه دل عاشق شدی همینجا شم. تمسخور کردن آدمام جزء جز حرفتونه عوضی گرفتی آقا اون آدمی که فکر میکنی من نیستم پس نگهدار پیادشم یعنی نرسونم تو لازم نکرده میگم نگهدار مگه گوشات سنگینه لابد لابد به ماشین هم نگاه کردین لابد به قیافه و رخت لباس هم نگاه کردین لابد فکر کردین من ارزشش ندارم چند دفعه مثل بچه آدم بهت گفتم نگهدار حالا مگر اون پای صاب مردتو ن این... دست بلند میکنه که افشاری رو بزنه افشاری میخواد دفاع کنه ترمز میکنه و یه ماشین از پشت مکم میکنه پیاد خوب شد؟ پرستار پیاده میشه و میره دوتا مرد از ماشین پشتی پیاده میشن و سراغ افشاری و با اون گلاویز میشن پرستار از دور نگاه میکنه دوتا مرد افشاری رو میشنه دوتا مردم حسابه پرستا نگران به اونا نزدیک میشه و با کیف به یکی از مردا میکوبه و یک گارد کاراته میگیره مردا ترسیده فرار میکنه سوار ماشینشون میشن و میرن افشاری بلند میشه میشینه دهنشون بسیده <تصفيق> دیگه بگونه بریم فرار حالا شدم یه بوزیمه خورده خوبه؟ آج با سر شما هم پرسار <تصفح> میخنده و <تصفح> ماشین افشاری نزدیک میشه پرستار هم بغل دستش نشسته توقف میکنه پرستار میخواد پیاده بشه اما لحظه ای سعب میکنه. خیلی ممنون که بالاخره رسیدم خونه منم بابت همه چیز از شما ممنونم من دوست ندارم آدم های غریبه بیان خونم ولی واسه اینکه دست و سورت تو به اگه دلت خواست میتونی بیای بالا پرستار با افشاری از پله بالا میره. به در خونه میره سلام مامان منم. دستشویی اینجاست. دست و صورتت رو زود شروع برو. درم به من. باشه خیلی ممنون. پرستار به اتاق مادر پیرش میره. افشاری هم وارد دستشویی میشه. حالا زن خودی نوانده. واشتمی از نمی نمیتونه اصلا نه خیلی یما فرنجس شما تو روز بعد افشاری به باغ محل اختفای پسر زاره اومده. از ماشین پیاده میشه. اصغر از سارق از پنجره نگاش میکنه. افشاری به شکل رمز در میزنه در رو باز میکنه سلام تو کجایی؟ ما رو بردینت اینجا امان به من خودی که چی؟ به توضیح میدم. شما چطورین؟ چرا نقد عقب کردی؟ داخل میشن. پسر هنوز چشم دستش و دستش باز من کلی کلنگ و نخ چکشیدم. شخصا خودم رفتم دیدمش. حالش خوب نبود. بعد با پرستاری که اونجا کار میکنه تره دو ریختم تا از نزدیک اوزای زار از زیر نظر داشته خب بعد ام. خوشبختانه با خبر شدیم که حالشی به بهبوده قطر رفت شده همیشیز تحت کنترل ماست ما تا چه باید اینجا ببینیم نقشتون چیه؟ چرا هیچی به آدم نمیگینی خب زهره باید بیتونه کاری که میخوایم انجام بده یعنی تا چه؟ اومده به یزودی حالش بایدتر نشو تکریف من چیه؟ اصلا اومد این مرد اون وقت میخوان چیکار کنی؟ ای بابا خدا نکنه. بدی ریگو. باز یه اشویی میگیره. یا کاری رو شروع نمی‌کنم یا اگه شروع کردم تا کش میره خیلی خیلی خوب خیلی خوب. حالا اصنمیشو من درستش میکنم با من. بهتر کارو بکنی به نفحت. درزن. صورتاتم هم تها واسه همین عصبیان اه ما رو خوردین اون همه. خب منم هم باید یه جوری سرم گرم کنم دیگه. و اینو حوصله میگیریز با هم. باشه باشه. الان ترتیبش میدم. ببینون یه خروب خوب نیست. و اونم ول میکنه یاخرو افشاری توی بقالیه همون زن روستایی کناوهای تموم شده آره بله تموم شده باید بگم برمون بیارن البته دوتا دو تا برداشته همین پریلوزا کلیتونمایی اینجا بود مسافر زیاد اومده آقا ما فکرشو نمی کنیم خدا بهخواد امسال برای باغدارا بهتر از پارسال سلام سلام علیکم چهار بسته سیگار بهمن میدی چهار بسته دو بسته بیشتر فعلا ندارم باش همون دو بسته هم. باش افسادت من آقا زن رو به مرد میده و پولو میده آیان... آقا باقی پول خدا بده بری جم این مثل شما مسافرن اتفاقا سمت باغ شما سمت باغ ما بله چطور ندیدی نشون خیلی هن همینطور تو باقی اطراف ولو هن خیلی هن. افشاری با دو کیسه دوان دوان به باغ میاد حسابی ترسیده اطراف رو نگاه میکنه صدایی میشنه به دو خودشو به ساختمون میرسونه در میزنه ازغر در رو باز میکنه افشاری در کنار از نگران دم در میسته چیه؟ چیمی شده؟ تو کسی این طرف را دیدی؟ نه چطور اگه؟ مطمئن ما که از اینجا بیرون نرفتیم من قرار بود کسی بیاد این طرف را. نه نه ولی به نظرم اینجا نگرانش یه وقت به نظر این اطراف یه رفت آمدایی است که خیلی باید محوظه باشیم تو من یک کسی را نه کسی که ندیدم ولی حسم میگه فضا یه جوری سنگینه انگار صد تا تو آدم میپاد اصغر خون سر کیسه ها رو میگیره و میه هاج خیاراتی شدی؟ داره میزنه به سرت شاید شاید چرا خودتو خودت باختی به خودت مسلط باش ما داریم کارمونو خوب پیش می‌بریم آره اگر این اتفاق لرنه برای زهارا نیفتاده بود خیلی زودتر به نتیجه میرسیدیم من مطمئن بودم یعنی حالا مطمئن نیستی؟ چرا؟ نکه ده باشم بعد ببینیم این خانم پرستاره چه خبرهای جدیلی اون میاره باش یک قرار دیگه گذاشتم سرتون قد گرم اون خانومه چه که ما رو پاکی بره با؟ نه بابا <laughs> افشاری ساده دل حسابی دلش قنج میره و از سارق چپ چپ نگاش میکنه بازی، سرتمه در حرکت افشاری و رامین به شهر بازی اومده افشاری توی جمعیت دنبال رویاست پیداش میکنه همون خانم پرستار افشاری دست رامین میگیره و پیش رویا میره دست رویا رویا خانم ولی تو بهش تو خاله رویا ما بازه بره افتارت هم باش یه وقت جلوش بیادبی نکنی اونه هاش دیدمش بریم سلام رویا چطوری؟ کاشی جای دیگه دارو میذاشتیم اینجا چه خبره؟ یه بازی اون بره هست که کابینی چهار نفره داره ولی ما میتونیم دوتایی سوارشونی که خلبتر باشه خب بیا دنبال من گومم نکنیم راستی رامی پسرم سلام کن آبا سلام آبا چطوری؟ خب دیگه بریم د دیگه حالی دیگه فوتیاشو نمیپرسی از کی از بامینت زاره اخرسی حالش چطوره اون آوردنش تو باغش خوب حرف میزنه و تقریبا سر حاله به کلی یادم رفته بود ای کاش اصلا زارهی تو کار نبود چرا فکر به خاطر اونه که دلت می‌خواد ببینیم اولش چرا ولی حالا دیگه نه راستش من تو فقط به خاطر خودت میخوام ببینم رامینم تو خوشش اومده خودش با شکی نظرشو من گفت یعنی من از خوش دیدم افشاری و رویا سوار ترن هوایی هستی قطار با سرعت به طرف پایین میده مگه یا پنج دوباره چیه؟ چی میگی؟ نمیشونم تو با اضافه دوباره آدمان برو سربی نیست و نمیتونم جواب بدهم. مامان بیدم. من از از وای سانویی استانی بیشترم دیار خوششون بودن. من از دارم دیگه چارچوبانه. خیلی چه بودن؟ خب چه جان دیگه یه که دیگه. به دامین آمد دورایی که داره همچونه ولی من به اندازه نیستم. ابله علیه چه تکن شاد دامین اتیار است. دامین آره؟ اره. شد نه. میخوای بار سوارشی؟ بعدم نیست. ترنا هوا هوایی به لخرمیسته. رویا سرگیجه گرفته رویا میاد خونه کیفش روی موبایل میذاره و هم موبایلش زنگ خورده به طرف کیفش میاد بین وسایل کیفش دنبال موبایلش میکرده پیدا میکنه و اصله کیف میکرده. سلام هنوز سرم داره گیج میره چون مجبور شدم سه بار پشت هم سباره وسیله تفریحی مزخرف بشم که اسمش ترن حقاییه من سعی کردم به اون نزدیک بشم البته اونم هیچ مقابمتی نکرد از خودش حرف زد و زنش که دو سال پیش به دلیل سرطان فوت کرده فکر کنم اون با پسرش تنها بود من کسی دیگه ای رو نتونستم چه کنم البته بچه های دیگه تیمم همراه هم ما بودن ممکن اونا گزارش بهتری بدن اون تلفنم داره زنگ میزنه من بعدم با شما تماس میگیرم وربا بله حتما الو سلام چیزی شده؟ نه چیزی که نشده چند مبارا تلفنه هراتو گرفتم اشخار با که هر که در این وقت شما هم شد با یکی از دوستام صورت میکردم اصلا فکر نمی کنم به اینجوری زنگ بزنیم آخه ما همین نیم ساعت پیش از هم جدا شدیم بدخوش خوزش راستش به با تو میگی نیم ساعت کس هم جدا شدیم ولی برای خیلیه تو همین نیم ساعت خیلی دلم برای تقیی شده باور میکنی؟ نگرانت شده بودم خواستم مطمئن بشم که به خونه رسیدی پس رسیدی؟ تو چی؟ تو دلیت برای ما تقیی نشده؟ رویا بذار یه سیزه صادقانه میت بگم خیلی صادقانه صبر کن صبر کن مسا من یه ремонта مودر رم یه لحظه گوشی اینجوری بهتر شد اون چی بود که خیلی صادقانه میخواستی به هم بگی من گوشم با توست تو باعث شدی که امشب خونه ما حلواهای دیگه داشته باشه امشب من بعد از متاتو چراغ های خونه رو همه رو همه رو, رو روشنگ چراغو روشن چراغو چندین بار روشن خاموش پس خونه تو, تو تا خوابات تو ها حتی همون هم روشن کردم کوره پدر جادبرق هر چی میخواد بشه بشه چون امشب یه حساسی دیگه ای دارم فکر میکنم چراغ های خودمم همه روشنو غیر داره چشمک میزنه رامین هم چی احساسی داره چون منم میخوام شده الان تو اتاقش بیدار نشسته بود داره با کامپیوترش بازی میکنم خیلی احساس خوبی دارم انگار همه دنیا اصلا خود شرکت مایکروسافت با همه کامپیوتراش مال منه فکر نکنم پدر جد بیلی گیت داشته باشه شوهرم گفتم چقدر خوبه که این احساسمو با تو تقسیم کنم. من به خاطر به تلفن زدم. خب دیگه برو بخواب. دیر وقته. خوابای خوب خوب ببینی. شبت بخیر. رویا کلافه گوشی رو پایین میاره. افشاری امیدوار و خوشحال گوشی رو میذاره و آهی میکشه. به اتاق رامین میاد رامین مطالعه میکنه رامین جان همی خوابیدم بابا تو خاموشش کن بری بخوابیم باش زاره ظاهرم مریض احوال روی ترد قدم میزنه خوبه داریم کم کم به یک سر نخواهی میرس جناب سرهنگ هم توی اتاقشه حقید. همون مرد موساف با سیبیل امله هم ترم بار شده مردم کارمندان همهشون بیچ سرگردون هم. یه چند روز دیگه دندون رو جیگر بذارین تا ببینیم چی میشه. پس لاقل اجازه میبدیم موشیان بیان اینجا و هم به کارامون برین اونم سرم گرم میشه. و شما که شما لاقل ده بار اینو گفتین منم ده بار جوابتون رو دادم من به کسی نمیتونم اعتماد بکنم. این ما هستیم که شبانه روز داریم زحمت میکشیم هشتا تیم متخصص و ضبط درگیر کار هستن آقا ولی شما اینجا دارین استراحت میکنین و چکاپ میشین در هشت روز گذشته حتی یک لحظه از وضعیت سرتون بیخبر نبودین ناسون نیست آقا این آسون نیست شما باید ممنون ما باشین آخ الهی قربنون اخ متقمت بیشم سره اینجور میخوای یه موچی از اون لپات بکنم سرهنگ و معمور هم چپ چپ نگاش میکنه زاره ها پورتگال سرهنگ سریع به زاره اشاره میکنه که دراز بکش زارم سریع به تخت دراز میکشه بل با نوار امروز همین الان رسید. معمور جلو میره و رو از رویا میگیره رویا میره زودتر بذار ببینم چه در سوخت داره بود این روز ترا یه ذره شده ممور نوار ویدئوی رو توی ویدئو میذاره و میبینن امروز سه شمبه است آها امروز سه شمبه است تقویم امروز ساعت 11 است تازه شروع کردیم میخوایم سمونه بخوریم من آنها خیلی خوبه خیلی همه خوش میگذاره استراحت کامل هوای خوبالی. شما خیلی خیلی خوالیم چه آتیش باریشون که شما گرگا با همیه هفه درست حسابی میکردیم دل شما که واسه من تنگ نشده چون عروض داری منو میبین اما دلنم واسه شما یه خورده تنگ شده یه خورده شیطان درزم جنوب سفاکیویم خیلی آدم مهربونیم خیلی موزه من هستم منظورش همون از غر سارقه بیمارستم سرهنگ کوشه در دست پیش پرسال رویا یا بهتره بگیم معمور خودشون میاد و کنار ایسکای پرسال گذارش ملاقات سببت. آخرتون رو خوندم حد تو بود یک شکنجه یه واقعی حالا قرار دیگه نذاشتین که هنوز نه ولی حتما امروز برای یه قرار ملاقات دیگه تماس میگیره با خیلی حسابی گیر داده منم شماره تلفن همراه هم بهش و برای اینکه بتونه راحت تر با من تماس بگیر به یوسفی خبر بده که اگر تماس گرفت حتما شنود بشه باشه حتما سعی کزولتر به فهمی حالا که میدونم زاره تو موقعیتیه که می تونه پول فراهم بکنه؟ چرا علاقه ای به ایجاد تماس بعدی و پیگیری ندارم؟ چرا قدر لفتش میدن کار خر قربان من که تقریبا مطمئننممون تنهاست پای هیچ باند و هم در بین نیست امکان نداره ژنرال سرحنگ احتمالاً ما اشتباه کردیم. قضیه نمد اینقدرام جدی باشه. به نظر من اون یه آدم تنها، احساسی، ساده و مستصله. همین چیزی از... میگه. سرهنگ عصبی و دائم پلک می‌زنه. یک آدم ساده، تنها، احساسی و مستعسل با یک بلیون دلار پول نقد توی مملکت چه غلطی میخواد بکنه؟ احتمالاً این آدم تصور درستی از پولی که خواسته نداشته. او خیلی آدم ساده‌ایه. امکان نداره. برعکس خیلی هم آدم پیچیده ای سادگی نکن دکتر جان. الان چند روزی که دائم تحت تعریبه بیشتر دور دوروبر فروشگاه های کامپیوتری که قطعا محل ملاقاتشه میگذرونه ساعت‌ها جلوی ویترینای مغازه وای میسه و از تو شیشه بچه های ما رو میپاد گفتی فروشگاه کامپیوتر؟ چطور؟ مگه چیزی در این رابطه میدونی؟ اون یه بار در مورد کامپیوتر رو شرکت ماکروسافتو اینجور چیزا با من حرف زده خب خب خب خب, خب ولی من اصلا فکر نکردم حرف مهمی زده اصلا جدی نگرفتمش ولی الان روش کار میکنم فقط بهم به فرصت بدیم به جمده یالله بی سبرانه منتظرم خانم مختاری هزینه عملیات سر به فلک زده صدای همه رو در برده الان کجاست خودش تو اداره از پسرشم تو خونه تنهاست همین الان گذارش گرفتم خودم ترتی شومق افتادم مختاری گوشی تلفن رو برمی‌داره. افشاری با ماشین با سرعت از راه می‌رسه. ترمز می‌کنه. سریع پیاده میشه. در عقب ماشین رو باز می‌کنه. سه تا کیسه خرید و یه دسته گل بر برمی‌داره. با پا درو می‌بنده. در ساختمان با پا باز می‌کنه. در خونه رو باز از دستشویی بیرون میاد. رامین. رامین. بچه‌م. بیا بیا چیکو ماکن. یه خبر خوش. خوش <تصفيق> اومدی بابا کامپیوتر چیه تام سقد با کامپیوتر برداشتن رویا رویا خانم شب میاد اینجا خونه ای ما اینجا خیلی افتضاحه می بی خوام بیا من چی بگم برو همون کوتو با همون صاب و سبز سبز خوشبوایی که بود بوف بشو نه نه اول رو اون اتاق دستم رو کن همه چی باید سر جای خودش باشه ببین رامین دلم میخواد خواد یه کاری بکنی وقتی رویا خانم اومد انقدر از تو خوشش بیاد که یعنی همیشه هم از اسپری که خریده به خودش میزنه حالا متوکم لباسا و ملافر رو که روی بنده واشاستم درست برام هم بعد همیشه تمیغ مرتب دیگه رامین کیصار میندازه و میدوئه بیرون مردی سبد گل به دست از گل فروشی بیرون میاد سبدی با گلای رز قرمز به طرف ماشینش میره فاکتورو به رویا که توی ماشینش نشسته میده و خودش سبد گل به دست پشت رول میشینه ظاهرا اون راننده آژانس ماشین حرکت میکنه رامین جلوی آینه ایستاده به موهاش جل زده و خودشو رو آماده میکنه که افشاری کنارش میاد تا خودشو رو مرتب کنه انقدر لفتش زود باش الان میاد آخه این چه قیافه ای مزخرفی باز خود درست کردی عین جوجه اول تو شخصیول دستیار دابیناکو، میگه وحشی نم حمله نمیکنه. بذار اون مرد داره بحثو. خیلی معذب. یه خیار کشید. همین. چند دقیقه نمونیم. رامین. عکسای مامانم رو میزت بچو. عکسی از همسر مرحومش رو از گوشه آینه میس توالت برمی‌داره. رامین همچنان در حال سیخ کردن موهاشه. افشاری که پیرنه زرد خوشنگی پوشیده و دکمهای اونو باز گذاشته توی آشپزخونه میاد. در کابینتو باز میکنه. کتری برمی‌داره که صدای ماشینی میشنه. دم پنجره میره پرده رو کنار میزنه رویاس، از ماشین پیاده میشه و با عجله به طرف در خونه میره مردی از سمت شاگرد ماشین پیاده میشه سبد گل دستشه رویا سبد گلو فراموش کرده بر میگرده و سبد گلو از مرد میگیره تشکر میکنه و به طرف در خونه میره ماشین حرکت میکنه آه. افشاری از دیدن مرد جا خورده و کمی توی خودش میره آرون برمیگرده به سختی آب دهنشو رو فرورده در ورودی خونه رو باز میکنه بد جدی تو لبه دمه در میسته رامین رفته و در ساختمونو رو برای رویا باز کرده رامین و رویا توی پاگرد پلها میستن رامین مدام با موهاش ور میره رویا از ها بالا میاد پیش افشاده رویا و پشت اون رامین وارد میشه رامین باز هم به موهاش دست میکشه رو یاموت شلوار بنفش کمرنگ پوشیده با روسری بنفش یکی دو قدم راه می خیلی خوش آمدیم هیچ چیزی میتونه اینقدر خوشحال کنه. بفهمی. دو جان این کول بده به من بود و بره روی روی خرم برگردی. فکر کنم خونه خودته. هرچند که معقر و فقیرون است. اتفاقا خونه گرم با صفایی داریم اصلا فکرشو نمی‌کردم افشاری خاندان سربزیری یه تصور دیگه ای داشتم رامین دمپای به دست از اتاق بیرون میاد و ها رو جلوی رویا میگیره منارو بابام برسوخه به پشکراتر باشی چه قشنگه چه سلیقه‌ای رویا کیفش روی میز میذاره و دمپایا رو میپوشه رنگش به مانتوش چجوری اومدی ماشین داشتی نه با تاکسی اومدم آدرسی چی راه پیدا کردی کلی اینرا اونور گشتم تا آدرس تو پیدا کردم چه بوی غذایی میاد هم بلدی ای چی یاد گرفتم یعنی چطور اومدی یاد میگر. تا تو یه استراتی بکنیم منم یه سری به غذا بزن اقا به بزن تو آشپسخونه اه. رفته رسی از بابت این گلم خیلی خیلی از ام گل به دست وارده آشپزخونه میشه رویا و رامین هم میان کمک؟ نه خیلی ممنون همیشی آزره رویا به اتاق رامین میره بسه بمینم اینجا بعد اتاق تو باشه درست داره آبا. چه خبر اینجا چرخی توی اتاق میزنه رامین درو میبنده افشاری سبد گل به دست پشت در میاد مکسی میکنه و چراغو خاموش میکنه اون مشکوک شده پای پنجره میاد پرده رو کنار میزنه همون ماشینو رو میبینه که کنار خیابون ایستاده و دوتا مرد توی اون نشستن راننده و مرد دی. پردرم میبنده نگاهی به در اتاق رامین میکنه کمی عصبیه دلش به تاب, تاب افتاده دستاش میلرزه سبد گلم به لرزه میفته تا اینکه سبد گل و گوشه آشپز آشپسخونه پرت میکنه چشماش سرخ شده و تمام ازولات صورتش میلرزه رویا توی اتاق رامین به اطراف نگاه میکنه به کامپیوتر دکوری رسیده اینا چیه؟ کامپیوتره اینجوریش نکنی کامپیوتر چجور کامپیوتری؟ مخصوصه. هیچ که مثل اینو نداره. یه رو از روی میز برمیداره. دکور کیسیه که موس بهش وصله. کارم میکنه. اونو میچرخون و نگاه میکنه. کار میکنه؟ چجوری؟ رویا قسمت کیبوردم برمیداره و نگاهی میکنه. یه جباز با یه تردیل. اینجا. ده. رامین آروم نگاهی به در اتاق میکنه. حالا اومد بالا. شماره های خیالی رو میزنه و رویا سر بلند دست گذاشته و به رامین نگاه میکنه و سر تکون میده. رامین باز رو میبنده و ادامه میده. حالا میرین تو منوی شورت. بعدش پروگرام که اون بالا بعدش ماکرو سا انتخاب میکنیم و روش کلیک میکنیم. شما نمیدونین چرا میام و اما توی اتاق پذیرایی پاکت نامی لاکو مهر ای با مهر محرمانه که باز شده و روی فرش افتاده یه آینه کوچیک کنارش کیف رویا که بری افتاده کیف پولش هم بیرونه روی میز دستگاه ضبط صدا یه ماشین حساب خودکار عینک و موبایل تلویزیون همون فیلم پسر زاره در باغ رو نشون میده ظاهراً افشار فیلم گذاشته و دیده در والکون بازه و افشاری نیست اتاق رامین که پنجره نیمه بازه و بعد پرده رو تکنه رویا با چشمان بسته میگه و رامین با چشم بسته روی کیبورد دکوری تایپ میکنه یه خط بیا پایین تا مثل خواب دم صبح و چنان میتابم که دلم میخواهد بدهم تا تا هدهش بروم تا سرکون دورها است که مرا را میخواند. موبایل رویاست که زنگ میخوره رویا سراسیمه از اتاق رامین بیرون میاد و میبینه که وسایلش روی زمین ولو شده بله انگار لو رفته دست برپیشونی میذاره کیفشو برمیداره خالیه هفتیرش نیست قوطی خالیه فیلمو برمیداره حمید حمید خود یه فیلم رو میکنه و از خونه بیرون میره وارد کوچه میشه دوان دوان پهلوی ماشین حمید میره نیست به طرف ماشین همکاراش میره همونی که فکر میکردیم آجانسه رویان شده دیم اونو ندیدی اون که بیرون نایمده چرا چرا فرار کرده امکان نداره. باقی مخفیگاه پسر زاره آتیشی در منقل روی بالکن محیا شده اساهر زاره چهار سیخ گوشت کبابی دستشه و با دوربینی که دست اصغر ساره یا بهتره بگیم محمود دورنت هست، صحبت می‌کنه. به طرف داره ساختمون در. آقا برو منم بهت چش این جانه با هیژوم‌های فراوان، یه حسابی در بیرون درست کردن. اصغر سارقم دوربین به دست پشت سرش میره و فیلم می‌گیره که ناگهان با حمید مواجه میشه که فرزان رو پشت بده. می‌چوچکار می‌کنه. اون آدم اینکه می‌خوام خوش بچه‌ندم. مواظب باش. اون اصله چیه؟ از جوردیش. یا اسلی واقعیه. فراماس. میخوای بسادم تو به طرف اصغر هم نبر میشه و هر دو رو توی خونه میفرسته و درو در می‌بنده. اون دوربینی بیار بالا سمت اون بگیر شو که مردویی کنه. مواظب باش شما نکنه. من دیگه دست خودم نیست. به اختیار چردم. دوباره فرزانو به طرف خودش میکشه گردنشو میگیره و هفته به رو روی صورتش میزن امکان نداره بتونی از اینجا بیرونه برای آخری بار بد میکن اون دوربین لعنتی رو بگیستمت من نباید ما رو به خاطر انجام وزیفه سرزنش این همه یه وزیفه شما نبود شما وزیفه دیگه دستید دیوانه شده درسته از کن اقابه زنگانی تو میدی من دیوانه شدم خ دیگه اشتباه می شده از بدی هر میگم خوب گوش تا فردا صبح تو مورا میدم. من پول میخوام. بهتر. بهتر چقد بده؟ نمی دونم. چرا نمیدونی زیاد. کم. نمیدونم گیرم. غلطه. من بگم صفر میگم. اگه گید تک بگی صفر، بگی تمیصی. این شوط. بخله. بخله پول بهتر زیاد. زیاد. من زیاد پول میخوام. زیاد. هر بیشتر بهتر. اگه دلار باشه بهتر. اون غضب این که تو بگم بس. مردی در حین پوشیدن کاپشن به طرف یه فولکس واگن قدیمی میره درشو باز میکنه دو نفر پای دستگاهی نشستن و صدای توی می میشنون و, و زنگیت اومده برای همه رابطه رجیت اومده باشه دو. همه بات باشه دو. همه بات آماده باشه دو. همه بات اومده باشه دو. زاره به همراه سرهنگ و مأمور دیگه وارد دفترش میشه. همون اول می می‌کردم میکنم میخواد برف شما رو چک نمیتونین این کارو بکنین. مسئله بگه مسئله شما تنها نیست ما, ما باید برمشه خودمون این مسئله رو آقای اون این دفعه دارم راسترسی سکته میکنم بعد از دیدن اون نوار هم تمام شده دست خودم نیست میبینیم آقا اگه دستم بهش برسه تیکه تیکش میکنم به برادی شاید جرش از وسط هلو؟ هلو؟ السلام علیکم یا شیخ و وسهلا جدی میگی؟ سرهنگ نگاهی به همکارش میندازه و خیلی تعجب کرد باغ محل اختفا مصطدی رو میبینیم که شاخی رو کنار میز میذاره و شخصی شخص ساختمور زیر نظر داره من به مصط نزدیک شدم امنیت بهجرت تمام با بسم صحبت می دو مامور از تپه بالا میان و پشت درختان مخفی میشن چهار نفر دیگه میان که پراکنده میشن تا ساختمون رو محاسبه مردی پشت درخت پرا میگیره. ساختمون کاملا تحت نظر و محاسبه است. حمید خسته و بیحال با بلوز سفیدش هفتیر به دست گوشه نشسته و پتور و دور خودش پیچیده. فرزان براش چای آورده. با قند براتون پردوشین نش فکر کنم سردردتونو خوب کنه. همید سری تکون میده ولی لیوان چای رو از فرزان میگیره به فرزان خیره شده تو کلاس چندمی بزر اگر زنده بمونم میرم سوم راهنمایی فرزان میشینه تو کامپیوتر که داری کامپیوتر <computer> نه ندارم برای چی؟ همید باور نمیکنه یعنی تو کمیکتر نداری؟ نه ندارم. حمید حسابی گیت شده. صدای ماشین پلیس اونا رو به خودشون آورده. همید چای به دست بلند شده و به طرف پنجره میره با هفتیر و حرکت دست فرزان و دهکن. ب رو کنار بزنه. بنز زاره از راه میرسه. میسته. ماشین پلیس هم پشت سرشه. که میاد و اون هم میسته راننده ای زاره پیاده میشه و برای زاره که عقب نشسته باز بیاده. زاره که دو تا کیف بزرگ دستشه پیاده میشه سرهنگ که تو ماشین پلیس بود پیاده میشه رویا و رامین هم صندلی عقب نشسته آماده باشه یک تمام رویا که اینکه دودی زده دستی بر سر رامین که ناراحت نشسته میکشه سر اونو میبوسه و پیاده میشه رامین نگران پدرشه رویا پیش سرهنگ و زاره که کیف به دست ایستاده بیر اینکشو من داشته yeah. خودت تمومش کن رویا دوتا کیف بزرگو میگیره و آروم به طرف خونه راه میفته. حمید که شاهد این صحنه بوده دل تو دلش نیست لیوان چای از دستش میفته اصلا پیرهنشون میوشه یه نگاهی توی آینه به خودش میندازه. نگاهی به فرزان میکنه سندلی وسط اتاق میذاره تو بشین روی سندلی جون نخور باشه فرزان روی سندلی میشینه حمید به طرف در میره کلید روی در میذاره گفر در رو باز میکنه و میره عقب و آماده میایسته رویا کیف به دست پشت در اومده رویا در باز کن بدون اسلحه بدون کلک بدون اسلحه بدون کلک در بازه حمید پشت سر فرزان ایستاده و هفتی رو به طرفش گرفته بعد از اینکه میگه در بازه رویا یکیف رو زمین میذاره در رو باز میکنه نگاهش به حمید میفته حمید نگاهش از رویا میگیره رویا کیف رو بر میداره ساختمون میشه و میایسته اون درو رو ببند بعدش بگو چیکار چی داری؟ حمید سعی میکنه به رویا نگاه نکنه. از من خواستن این معمولیت رو انجام بدم در زم بهم هم گفتن توی این چمه یک میلیون و سی هزار دلار پول نقده و اولین پرواز دوبهی برای تو بیدن. ولی همش تولبیه لیموش کاغذ بیارزش اینو اول گفتم که باورم کنی خودت گفتی بیکلک جورتر نیا. هر دو کیف رو زمین میندازه خب خانم حالا اسم این کار جربته یا سو استفاده خانم پلیس؟ نمیدونم ولی دیگه نمیخوام رو راست نباشم چون فهمیدم تو کیستی یا چی میخوای از اینکه که بی اجازه سویکی فید رفتم مذارم میخوام لابد برای مشکل درست کردم تو کارو خراب کردی خرابتر از خراب هم برای من هم برای خودت کاش میتونستی ببینی اون بیرون چه خبره من عرضشو نداشتم چرا انقدر برای من زحمت کشیدی خرج کردین بگه من چی بودم جامعه امنیت میخواد من با اونبانی بازم نکرده شعار بدی دیگه حالم داره از حرفاتون هم میخوره من... من که مجرم نبودم من که این کاره نبودم همه این کارهایی که کردی و همین الان داری میکنی جرمه یه جرم سنگین چرا نمیخوای بفهم؟ ایچ مجرمی مجرم به دنیا نمیاد میاد نه مسلمه که نه سلوت برای چشماتونو بازدر کنید شاید بخاطر همینه که الان اینجا بره من نمونه زندگی زنده خوشبینی و ساده دلی بودی رویا بغض کرده نمیتونه ادامه بده چشمای همین تر شده همین از فرزان فاصله میگیره و پای پنجره میره من, من مقلوب شدم من مقلوب شدم من ساعت‌ها با رامین بودم خیلی با هم حرف زدیم از همه چیز و همه کس حالش چطوره؟ میخوای ببینیش؟ شما رحم ندارین عاطفه ندارین برای رسیدن به هدفتون از هر وسیله استفاده میکنین حتی اگه اون وسیله بچه معصوم و بیگناه من باشه تو داری غذابت بیرحمانه میکنین واقعیتش اینه که رامین خودش خواست تو رو ببینه منم قبول کردم رامین برای دیدن زشتی ها خیلی خی من نمیذارم پدرش این چیلی حتی اگه خودش بخواد ولی من نمیخوام نمیخوام منو تو این وضعیت ببینم بس من تو تایه غارت رفتم دیگه چی هست اونو من میخوام؟ رامین هنوز نمیدونه موضوع چیه نزاشتم بفهمه شاید بازم دارم مرتکب خطا میشم به هر حال من یه زنم ساختن برام مهمتر از بیران کردنه از نظر هیچوقت رامین این چهره کری پدرشو ببینه بذار تو همین چهارتی باری تموم بیشه هنوزم خیلی دیر نیست کافیه دستاتو ببری بالا مطمئن باش همیشه دستی هست که دستاتو بگیره بیرون آدمای زیادی منتظره دیدن این لحظه و تو رو من این کار کردم چون میدونستم فقط تو با من میتونی کارو بکنی من مطمئن نیستم اینو هم به من ثابت کن هم به بقیه من بهش احتیاج دارم برید هم تلافی اون خطایی که به خاطر من مرتکب شدی حالا تو نجات دهندهی هر تو برید ممنونم همین سرش رو برمیگردونه و دیگه به رویا نگاه می میکنه رویا دست فرزان رو میگیره که برن فرزان امتننا میکنه پیش همین میره و دستش رو دستشو دراز میکنه خدا ضاه شد همین نگاهی به فرزان می کنه نگاهی به دستش و دست می ده. فرزان پیش رویا بر میکرده راه میگن که برن این دفعه رویا میسته و دوباره به همین وقتی ما از اینجا بیرون بریم هیچ راه فراری برای تو نیست مگر اینکه پرنده بشی خیلی نفهمیده رویا دست فرزانو میگیره و از ساختمان خارج میشه لحظه خروج باز هم به همین نگاه میکنه و درون میبنده زاره که در کنار سرنگ و است هست پسرشون میبوده فرزان از رویا جدا میشه و به طرف پدر میاد فرزان پسر کجایی رامین که توی ماشین نشسته اونا رو میبینه فرزان توی بخل پدرش میره رامین بغض کرده و نگرانه شدی شدی مهمورا ماسک به صورت و سلاح در دست دم ساختمون بیا شیش نفر حمید که عشق می ریزه متوجه اونا شده رامین هنوز توی ماشین نشسته و منتظر پایان ماجراست. است معمولا که ماسک ضد گاز ااشاور به صورت دارن به هم اشاره میکنه که وقت حمله است شیش های ساختمونه میشکنن دو تا گاز ااشقاور توی ساختمون میند همید متوجه شده از جاش پا میشه رامین توی ماشین این ها رو دیده و انگار دیگه امیدی نداره مأمورا در باز میکنن و وارد ساختمون میشن. هر کدوم به دنبال حمید به طرفی میرن. یکی از پله بالا میره. اصغر سالف یا همون مأمور پلیس حالا موهاشو مرتب کرده، عینک دودی به چشم زده و توی ماشین پلیس نشسته. سرهنگ که در کنار درختی ایستاده، سیگاری به لب میذاره و با فندک روشنش میکنه. نگران حمیده. اسغر از, از ماشین پیاده میشه. با آنگوش روی سقف ماشین میزنه. اون هم نگران از پشت ماسک یکی از معمورا میبینیم که بقیه دارن همه جا رو به دنبال حمید میگردن و نیست طبقه بالا نیست توی اتاق خواب نیست اتاق پذیبه نیست پشت تختی که ایستاده وسط اتاقه نیست صدای از توی اتاق توجه معمورو که بلند بلند نفس میکشه جلب میکنه توی اتاق میره حمید که از پنجره بیرون میپره و تکه از پیرهنش که به لبه دریچه گرفته پاره میشه بله حمید پرنده شد و پرید رامین توی ماشین و از هیچی خبر نداره حمید با لباس پاره بین درختان میدوه و فرار میکنه نگاهی به پشت سر میکنه که مطمئن بشه به راهش ادامه میده و همچنان میدوه به سرازیری میرسه میپره زمین بلند میشه عینکش رو درست میکنه و دوباره شروع به دویدن میکنه و وارد دشتی میشه که آخرش به کوه ها میرسه حمید آزادانه و رها با دستانی باز به سوی رهایی و البته بی نهایت میدوه تا جایی که تبدیل به نقطه میشه و در دشت وسیح محو میشه می کنم نظر خودتون رو در ارتباط با فیلم هایی که در رادیو فیلم می با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامک ما 301075 اما عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی می کنم. صدا بردار همیشگی ما استاد علیه حاجی نوروزی. سردبیر و تهیه کننده برنامه فرشاد آذرنیا و بنده هم که به عنوان گوینده و نویسنده در خدمت شما بودم بهرام سروری نژاد. تا رادیو فیلم دیگر خدا نگاه. گرد.